دوسته هم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. جایی که با هم کلام خدا رو مطالعه می کنیم. بررسی عهد قدیم به کتاب نبی رسیدیم. وقتی این کتاب نبوتی کوچک رو مطالعه می خواهیم دید که چرا خیلی ها احساس می که نبوت اون همونقدر برای ما مورد نیاز هست که در دوری خودش سالها قبل برای مردم مورد نیاز بوده. دعای ما اینه که خدا با قلبهای شما توسط این نبی عهد قدیم صحبت کنه. حالا با هم به معلممون گوش میکنیم. کتاب هجعی در اکثر کتاب مقدس ها فقط دو صفحه داره. چون اون فقط از دو باب کوتاه تشکیل شده میتوان گفت این دو باب کوتاه به طور خلاصه شامل چهار معزه هجعی نبی هست که در مورد اولویت هاست. من به معیزه اول عنوان اول خدا رو دادم. حالا به دومین معیزه حجه نبی گوش کنید. در اوایل ماه اکتبر همان سال خداوند به واسطه ی این پیام رو برای اونا فرستاد و گفت زروبابل ابن والی یهودا و یهوش ابن یهو رئیس کهنه و بقیه قوم را خطاب کرده بگو کیست در میان شما که باقی مانده؟ و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد. پس الان در نظر شما چگونه می نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمی نماید؟ اما الان خداوند میگوید گوید ای زر و بابل قویدل باش و ای یهوش شعبن یهو صادق قویدل باش و ای تمامی قوم زمین قویدل باشید و خداوند می فرماید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم. قول یهو و سبایوت این است. بر حسب کلام آن اهدی که در حین بیرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چون که روح من در میان شما قایم می باشد ترسان نباشید. زیرا که یهو و سبایوت چنین میگوید یک دفعه دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی آسمان ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت و تمامی امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمعی امت ها خواهند آمد و یهوه سبایوت میگوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت. یهوه سبایوت میگوید نقره از آن من و طلا از آن من است. یهوه سبایوت میگوید جلال آخر این خانه از جلال نخستینش عظیم‌تر خواهد بود و در این مکان سلامتی را خواهم بخشید. قول یهوه سبایوت این است. این چهار معزه حجای رو که در دو باب کوتاه ثبت شده میتوان در مجموع مرکز ایمان نهاد. در موعظه اولش جایی میگه ایمان بر اولویت های شما متمرکز میشه. در معزه دومش میگه ایمان بر دیدگاه شما متمرکز میشه. دیدگاه کلمه زیبایی به معنی نگاه کردن از جایی اون چیزی مثل بسیرت که در بررسی کتاب تاریخی نههمیا دیدیم که نههمیا بسیرت داشت. نهمیا میتونست هدفش را از دیدگاه خودش ببینه و به همه موانع و چیزهای مخرب و کسانی که میگفتند تو نمیتونی به اونجا برسی بی توجه بود نه همیشه باصرت مثبت و عالی داشت دیدگاه چیزی مثل بصیرت هست دیدگاه و بصیرت هر دو میگن از اینجا نگاه کن و هدفت رو ببین و از نگاه کردن به مشکلات و کسانی که میتونن مانع رسیدن تو به هدفت بشن بپرهیز و به جای اون با بصیرت خود نگاه کن و ببین خدا میخواد چی کار کنه تا وقتی که اونو تکمیل کنه. بسیاری از قوم خدا مستعد نگاه کردن به گذشته هستند در موعظه دومش حجع بر این واقعیت اشاره میکنه که قوم یهودا به پشت سر نگاه میکردند مدت پانزده سال محوطه معبد محل انباشته شدن نخاله ها بود تا اینکه حجع موعظه کرد و مردم دست به کار شدند یادتونه که گفتیم اونها فقط هزار نفر آواره برگشته از تبعید بودند منابعی را که سلیمان هنگام ساختن معبد در اختیار داشت اونها نداشتند. سلیمان میلیون ها دلار طلا و جواهر صرف ساختن معبد کرد و معبد اصلی سلیمان به طرز باشکوه و, و گشاده دستی تزیین و مبله شده بود. وقتی پیریزی معبد دوم به پایان رسید، اونجا جوانانی بودند که معبد سلیمان را هرگز ندیده بودند. آنها در بابل به دنیا اومده بودند. در باب سوم کتاب ازرا ما استعاره زیبایی از ترکیب احساسات را میبینیم وقتی پیریزی دومین معبد به پایان رسید، از به ما میگه و چون بنایان بنیاد هیکل خداوند را نهادند کاهنان را با لباس خودشان با کرناها و لاویان بنی را با سنجها قرار دادند تا خداوند را بر حسب رسم داوود پادشاه اسرائیل تسبیح بخوانند و بر یکدیگر می و خداوند را تسبیح و حمد می گفتند که او زیرا که رحمت او بر اسرائیل تا ابدال آباد است و تمامی قوم به آواز بلند صدا زده خداوند را به سبب بنیاد نهادن خانه خداوند تسبیح می‌خواندند بسیاری از کاهنان و لاویان و رؤسای آبا که پیر بودند و خانه اول را دیده بودند هینی که بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد به آواز بلند گریستند و بسیاری با آواز شادمانی صداهای خود را بلند کردند ببینید جوانان که هرگز معبد اصلی سلیمان را ندیده بودند با دیدن عظمت معبد بانگ شادی برمیآوردند خدا رو میپرستیدند و سنج مینواختند و خدا رو تسبیح می‌خواندند و سرود می‌خواندند و اما اونهایی که قبلا معبد سلیمان رو دیده بودند با صدای بلند گریه می‌کردند و همه این صداها با هم مخلوط شده بود و از مسافت دور به گوش می‌رسید. کاربرد عملی و شخصی این همهمه رو میشه اینطور بیان کرد. بزرگترین دشمن بهترین های خدا چیزی خوبه. خدا می‌خواد ما بهترینهای او رو و اراده عالی او رو داشته باشیم اما شیطان نمی‌خواد ما بهترین های خدا رو داشته باشیم. او هر کاری که بتونه خواهد که تا مانع بشه که ما بهترین های خدا رو به دست بیاریم. شیطان هیله‌گره. شیطان بسیار مکار و کاره. فقط به عنوان مثال فرض کنید خدا از شما میخواد یک پزشک خادم بشی که به نظر من یکی از بهترین چیزهاییه که یک نفر میتونه باشه. شیطان برای اینکه مانع شما از این کار بشه، هرگز شما رو وسوسه نمیکنه که برید و بانک بزنید. او این کار رو میکنه او برای شما زمزمه میکنه که ما همینجا توی منطقه و کشور خودمون به پزشکان خوب نیاز داریم بهتر نیست که یک پزشک خوب در همینجا باشی یک پزشک خوب بودن در این کشور چیز بدی نیست چیز خوبیه اما اگر خدا بهترین هاش رو برای شما میخواد او از شما میخواد که یک پزشک بدون مرز در کشوری خارجی باشید شیطان شما رو با پیشنهاد چیزی خوب وسوسه میکنه این طرز کار زکار شیطانه. معبد دوم چیز خوبی بود. اما معبد سلیمان بهترین خدا بود. وقتی ما در مقابل کرسی داوری مسیح قرار بگیریم، جایی که ارزیابی خواهیم شد، ما مفاهیمی رو درباره بهترین های خدا درک خواهیم کرد. خدا ما رو تدشیز و قادر کرده که چی کار کنیم. شاید در مقابل کرسی داوری مسیح این برای ما روشن بشه. در مقابل کرسی داوری مسیح خدا خواهد گفت نقشه من برای شما این بود. من تمامی عطایا و مهارت‌های لازم برای اجرای اون نقشه رو به شما داده بودم. حالا ببینم شما چی کار کردید. شما این کارو کردید. اون موقع خواهیم فهمید که شیطان ما رو فریب داده. اون موقع خواهیم فهمید که بزرگترین دشمن بهترین های خدا برای ما چیز خوبی بوده که مانع رسیدن به اون بهترین های خدا شده. کاربرد عملی و شخصی دیگری در پیغام حجه در دومین معظه او هست. دومین موعظه او به این واقعیت اشاره میکنه که قوم یهودا به گذشته نگاه میکردند و معبد سلیمان رو با معبد دوم مقایسه میکردند. بسیاری از این افراد وقتی مقایسه میکردند تا جای افسرده شدند که به کلی ناامید بودند. تاکید واقعی معزه دوم حجه این بود: به گذشته نگاه نکنید. در زندگی قوم خدا زمانهایی هست که این بهترین نصیحت برای اون مواقع هست. پولس رسول به ایمانداران فیلیپی تعلیم میده که آنچه را که در پشت سر هست فراموش کنن. من به عنوان یک شبان مشاور یاد گرفتم که کسانی هستند که نگاه به گذشته و مقایسه براشون بسیار دردناکه. اگرچه زندگی اونها امروزه به نظر عالی برسه ولی وقتی اونها زندگی امروزشون رو با زندگی قبلی مقایسه میکنن براشون بسیار دردناکه. دیک وودوارد نویسنده موضوعات تعلیمی دانشکده یک کتاب مقدس یک افلیج کامل هست. 20 ساعت در روز در رخت خواب میمونه. وقتی از فقدان چیزی رنج میبرید، این بهترین نصیحت برای شماست. بابت چیزی که از دست دادید قصه نخورید. بر آنچه که از دست دادید تمرکز نکنید و غم و قصه نخورید و افسرده نشید. با قدردانی بر آنچه که هنوز دارید متمرکز بشید. خدا را به خاطر چیزی که هنوز دارید شک کنید و به گذشته نگاه نکنید. میتونیم این رو به این صورت بیان کنیم. به گذشته نگاه نکن به گذشته فکر نکن و پسروی نکن در مورد گذشته و کاری که کرده ای صحبت نکن به گذشته بر نگرد. آنچه در عقب است به فراموشی بسپارید این چیزی که پولس گفته و تأکید حججی هم در دومین معزش به عنوان نصیحت این بوده آنچه در عقب است به فراموشی بسپارید و مقایسه نکنید کتاب مقدس مرتبا به ما نصیحت میکنه که مقایسه نکنیم به پتروس گفته شده بود که چطور برای عیسی خواهد مرد پتروز به دوست خودش یوحنا در سر سفره زبدی اشاره کرده و از ایسا پرسیده بود پس او چی؟ ایسا عینا با این عبارت گفته بود اگر من بخواهم او تا بازگشت من زنده بماند تو را چه؟ تو منو پیروی کن. پتروس خودت رو با یوحنا مقایسه نکن. ببینید کتاب مقدس مرتبا میگه که هر کدام از ما منحصر به فرد هستیم. وقتی خدا شما رو خلق کرد، قالب رو به کناری گذاشت. وقتی خدا منو خلق کرد از قالب استفاده نکرد در روی زمین هیچ کس شبیه شما و هیچ کس شبیه من نیست هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود این یکی از بزرگترین معجزات خداست حالا اگر این واقعیت داره و کتاب مقدس میگه که واقعیت داره من و شما چطور میتونیم اراده خدا رو برای مقایسه خودمون با دیگران درک کنیم آیا باید گفت که ما توسط خدای قادر مطلق خلق شدیم که شبیه اونها باشیم والدین این کار رو با بچه‌هاشون میکنن من و همسرم پنج تا بچه داریم و الهیات بیشتری رو از این بچه‌ها یاد گرفتیم تا در دانشگاه یکی از چیزهایی که از بچه‌هامون یاد گرفتیم اینه که همه اونها متفاوتن مطلقا متفاوت و به این ترتیب خدا با مشیت خودش تصمیم گرفته که اونها رو خلق کنه این قصد خدا بوده که فرزندان ما وجود داشته باشن پس چرا والدین به بچه‌ها میگن چرا خواهرت نیستی چرا مثل برادرت نیستی خدای قادر مطلق اونها را خلق نکرده که شبیه برادر یا خواهرشون بشن. گاهی وقتی اونها رو با افراد دیگه مقایسه میکنیم این شخصیت اونها رو واقعا خورد میکنه. چون کتاب مقدس به ما میگه اونها قرار نیست کس دیگه ای باشن و اگر این واقعیت داره پس اونها هرگز با اون مقایسه اراده خدا رو درک نخواهند کرد. پولس رسول این رو در آی بیان کرده که درکش بسیار سخته. او گفته زیرا جرأت نداریم که، خود را از کسانی که خیشتن را مده می کنند بشماری یا خود را با ایشان مقابله نماییم بلکه ایشان چون خود را با خود نیپیماياند و خود را به خود مقابله می دانا نیستند پولس رسول در این آیه چی میگه مقایسه نکنید خودتون را با دیگر افراد مقایسه نکنید به اون ترتیب اراده خدا را برای خودتون درک نخواهید کرد چون شما منحصر به فردید بعد پولس گفته خودتون رو با خودتون مقایسه نکنید، این بسیار نزدیک به پیام حجی در دومین معزش هست که در واقع چون این چیزیه، خدا دائما میخواد کارهای جدیدی در زندگی منو شما انجام بده، در کتاب مقدس میشنویم که خدا به قوم خودش میگه اینک من چیز نوعی به وجود میآورم. خدا دوست داره کار تازهی در زندگی ما بکنه، یکی از شبانان موسند به من میگفت که مستی گوری هست که هر دو طرف آن گیجیه، فکر می کنم یکی از بدترین چیزهایی که میتونه برای ما پیش بیاد مستیه خدا نمیخواد قومش در مستی باشن وقتی شما واقعا خدا رو پیروی کنید و اراده او رو بدونید زندگی محجج میشه چون خدا دائما کارهای تازه‌ای میکنه خدا وقتی میخواد کار ای انجام بده به ما میگه به گذشته نگاه نکن و کاری رو که در گذشته کردم با کاری که الان میکنم مقایسه نکن خودت رو با خودت مقایسه نکن پیشرفت فعلیت رو با قبلی مقایسه نکن در دومین موعظه حجه وقتی مردم معبد دوم رو با معبد اول مقایسه میکنن حجه به قوم خدا میگه که اساس این معبد روحانی است نه مادلی. اولین خانه پرستشی که خدا به موسی تعلیم داد بسازه یک خیمه بود خیمه پرستش پر زرق و برق نبود اولین خیمه پرستش دائمی هم نبود جمع میشد و دوباره برپا میشد برای تمامی اساسیه خیمه دسته هایی ساخته شده بود که بتونن اونها رو به سهولت حمل کنن به هر حال اون خیمه در بیابان بسیار بسیار مقدس بود بنی اسرائیل در اون خیمه خدا رو ملاقات می‌کردن می پرستیدن و از اون راهنمایی می‌گرفتن این چیزی که حجه در دومین بخش از موعظه دومش میگه گوش کنید اساس این معبد از خشت و سنگ نیست پس چیزهای مادی این معبد رو با معبد سلیمان مقایسه نکنید زیرا که یهوه سبایوت چنین میگوید. گوید یک دفعه دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی آسمانها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت و تمامی امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمعی امتها خواهند آمد و یهوه سبایوت میگوید گوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت یهوه سبایوت میگوید نقره از آن من و طلا از آن من است همه اینها خواهد سوخت به عبارت دیگه وقتی در روز عظیم خداوند که بسیاری از انبیا در موردش صحبت کرده‌اند این اتفاق بیفته، یهوه سبایوت میگوید: جلال آخر این خانه از جلال نخستینش عظیمتر خواهد بود و در این مکان سلامتی را خواهم بخشید. قول یهوه سبایوت این است. این در واقع اشاره جزی میکنه به چیزی که در 500 سال آینده اتفاق می‌افته. مسیح خواهد آمد. او به آن معبد خواهد آمد. حالا وقتی او وارد اون معبد میشه، اونجا رو پاکسازی میکنه و اشتیاق تمامی قوم ها این خواهد بود که به اون معبد بیان. چیزی که هجی در دومین بخش از موعظه دومش میگه اینه. خدا میگه ارزش این معبد به چیزهای مادی نیست. این معبد روحانیه. روزی تمام چیزهای مادی از بین خواهد رفت. اما وقتی تمامی چیزهای مادی روی زمین از بین رفت جلال من اینجا خواهد بود. و آرامش من اینجا خواهد بود. چون اینجا شما مرا پرستش کردید و آمدید که منو بشناسید. هجای در معیزه سومش در مورد تمرکز ایمان صحبت میکنه در معیزه اولش میگفت می ایمان بر اولویت های شما متمرکز هست در معیزه دومش گفت ایمان بر دیدگاه های شما متمرکز میشه به گذشته نگاه نکنید به جلو نگاه کنید با بسیرت نگاه کنید و ببینید خدا واقعا برای ساختمان این معبد چی میخواد و امروز در زندگی شما چیکار میکنه امروزتون رو با دیروزتون مقایسه نکنید. در معیزه سومش هجه اینطور میگه. ایمان بر انگیزه شما متمرکز هست. مشکلی که او در معیزه سومش به اون اشاره میکنه دقیقا اینه. قوم یهودا شروع به ساختن معبدشون کردن. اونها از کوه ها الوار بردن و مشغول باسازی معبدشون شدن. ماها در معبد کار کردند. تمامی پاییز و زمستان رو کار کرده بودند و خدا به اونها برکت نداده بود. هجای قول داده بود که خدا به اونها برکت میده اما برکت تا کنون نیومده بود. وقتی من بچه بودم در یک تابستان که زمان بسیار سختی رو داشتیم موقع تعطیلات به یک مدرسه کتاب مقدس میرفتم. اون موقع زمانی بود که واقعا پول کمیاب بود. من یک سکه ده سنتی داشتم. از صبح توی باغ انواع کارها رو کرده بودم تا اون سکه ده سنتی رو بگیرم. شنیدم که معلم میگفت اگر شما 10 سنت به خدا بدید، او به شما یک سکه ی 25 بیست و پنج سنتی میده. شما نمیتونید به خدا بیشتر بدید. من ده سنتم رو توی سینی هدایا گذاشتم و بعد در راه بازگشت از مدرسه در تمام طول راه دنبال یک سکه بیست و پنج سنتی میگشتم. وقتی به خانه رسیدم و هیچ سکه ای پیدا نکردم گریه میکردم. خواهر بزرگترم سعی کرد اون رو برام توضیح بده. او گفت خوب این واقعاً اینطور نیست که تو وقتی به خدا میدی او به صورت اتوماتیک دارایی تو را دوباره در ایام مهاجای مردم دقیقا همون کاری رو میکردند که من با دادن ده سنتی به خدا انجام دادم اونا انتظار داشتن که خدا بلافاصله به اطاعت اونها برکت بده به می میگفتند، پس برکت ما کجاست تو گفتی که خدا با ما خواهد بود و به ما برکت خواهد داد پس چرا ما 25 پنج اون رو پیدا نکردیم چرا خدا به ما برکت نمیده بعد از اون حجای موضعی بزرگی میکنه او میگه نزد کاهنین برید و از اونها در مورد شریعت سوال کنید یادتونه که گفتیم کاهنین معلمین قوم بودند قوم یهودا این امتیاز رو داشتند که هر موقع میخواستن نزد کاهنین میرفتند و از اونها هر چیزی رو که در مورد شریعت موسی می میپرسیدند. می هجایی به اونها گفت برید و از قول من از کاهنین بپرسید اگر کسی گوشت مقدس رو در دامن جامعه خود بردارد و دامنش به نان یا آش یا شراب یا روغن یا به هر قسم خوراک دیگه آلوده بشه آیا اون مقدس خواهد شد و کاهنان جواب دادند که نی پس هجای پرسید اگر کسی که از میتی نجس شده باشد یکی از اینها را لمس نماید آیا آن نجس خواهد شد و کاهنان در جواب گفتند که نجس خواهد شد حجع بعد منظور خودش رو روشن کرد او خطاب به مردم گفت خداوند میگوید این قوم همچنین هستند و این امت به نظر من همچنین میباشند و همه ی اعمال دست های ایشان چنین است. اما الان همه چیز فرق کرده چون که شروع به ساختن معبد کرده اید. چیز اساسی که از مطالعه معزه سوم هجعی میفهمیم اینه که شما به بابل رفتید چون گناهکار بودید حالا از بابل برگشتید و خداوند گناهانتون رو بخشیده اما لازمه که چیزهایی رو بفهمید قدوسیت مثل بیماری واگیردار نیست گناه مثل بیماری واگیر وقتی به موعظه اولش فکر کنید حجی میگه وقت بذارید و مقدس بشید چون مقدس شدن زمان میبره و فیض خدا رو میطلبه فیض خدا لطف و برکت او هست که ما نمیتونیم به دست بیاریم انجام بدیم و یا شایسته او باشی مهم نیست که خدا میگه خوشا به حال شما چون مطیع شده ای اگر به این سادگی بود که وقتی شما اطاعت میکردید خدا به شما برکت میداد اون وقت برکات خدا نتیجه کارها و اطاعت شما میشد خدا با اراده خودش و با فیض خودش در زمان خودش به شما برکت میده نه به خاطر اینکه شما اون رو کسب کردید یا شایستهش شدید. هجای در موزش میگه به این راحتی نیست که بر گناهانمون قلبه کنیم چون فیض خدا مثل بیماری واگیردار و مسی نیست 25 سال پیش یک شبانی به سرزمین مقدس سفر کرد یک نفر خواست که همراه او بره و با او هم اتاقی بشه اون شخص به هیچ عنوان آدم روحانی نبود بلکه برعکس شخص کاملا غیر روحانی بود اون سفر یک دوره یک ماهی مطالعاتی بود اونها تمام طول ماه رو با هم هم اتاق بودند وقتی به پایان دوره رسیدند هم اتاقی بسیار آشفته بود و میخواست که با شبان صحبت کنه او گفت این سفر داره به پایان میرسه و من مقدس نشدم شبان جواب داد آیا توقع داشتی به خاطر این سفر مقدس بشی او گفت بله من فکر می کردم اگر به سرزمین مقدس بیام و یک ماه با مرد مقدسی زندگی کنم مقدس میشم. اما من بیشتر از اونی که قبل از سفر بودم مقدس نیستم ببینید کسانی هستند که فکر میکنن قدوسیت میتونه مثل بیماری سرایت کنه پیغام سومین موعظه حجه این بود که قدوسیت به این ترتیب گسترش پیدا نمی کنه. قدوسیت با فیض خدا توسط معجزات خدا به وجود میاد این امکان نداره که فرزند یا نوه شخص مقدس شخصی مقدس و روحانی باشه عیسی به نیقودیموس گفت تو باید از نوع متولد بشی تو نمیتونی تولد تازه را از والدینت به ارث ببری و یا از شخص مقدسی بگیری اگر بچه بیمار باشه و پدرش دعا کنه و به خدا بگه که برای بیماری بچهش کاری بکنه و کمک کنه آیا اون پدر میتونه سلامتش رو به فرزندش منتقل کنه آیا شما میتونید شفا و سلامتی رو به ای که بیمار هست بدید سرفند به خاطر اینکه مشتاقید این کار رو بکنید نه شما نمیتونید شفا و سلامت رو اینطوری به اون بچه منتقل کنید سلامتی مثل بیماری واگیردار نیست شما میتونید بیماری رو انتقال بدید بیماری واگیرداره. اساس موعظه حجه این هست قدوسیت مثل بیماری واگیردار نیست شما نمیتونید اون رو اونطوری منتقل کنید قدوسیت از فیض خدا میاد اون در زمان خدا و به روش خدا میاد. اما صرفاً با کار شما در نتیجه کار شما و همکاری شما با مردم امکان پذیر نیست. حالا معیزه دیگه هم در این کتاب دوبابی هجی وجود داره. یادتونه گفتیم اولین معیزه این بود ایمان بر اولویت های شما متمرکز است و دومی ایمان بر دیدگاه های شما متمرکز و سومی ایمان بر انگیزه های شما متمرکز است. انگیزه شما از مقدس بودن چیه؟ انگیزه شما برای کسب برکات خدا چیه؟ آیا اینه که چون کار خوب انجام دادید، آیا کارهای خوب را انجام دادید فقط به خاطر اینکه برکت بگیرید یا کارهای خوب را انجام دادید چون میدونستید درسته و خدا رو جلال میده. در سومین موعظه حجه، او بر انگیزه های ما متمرکز هست. در چهارمین موعظه اش چیزی که او موعظه میکنه اینه. ایمان شما بر ترس های شما متمرکز هست حالا اینجا باز هم نیاز به دیدگاه‌های تاریخی داری فرمانی که توسط کوروش کبیر صادر شد که می‌گفت این اصرا می تونن به اسرائیل برگردن و معبد و شهرشون رو بازسازی کنن موجزه بزرگ و باشکوهی بود اشعیا این معجزه رو در باب 45 کتابش پیشگویی کرده بود اشعیا عملاً 120 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد او رو به نام پیشگویی کرد این یکی از بزرگترین معجزات نبوتی کتاب مقدس هست. اگرچه این فرمان که میگه قوم یهودا میتونن به کشورشون بازگردن معجزه بزرگ و باشکوهی هست اما بازگشت عملی اونها به اون اندازه باشکوه نبود سعی کنید خودتون رو در اون موقعیت تاریخی قرار بدید تا بتونید درک کنید که این هزار نفر آواره که برای بازسازی معبد برگشتن افراد بسیار باشکوهی به نظر نمی رسیدند اونها به اورشلیم بازگشتند و شروع کردند به بازیافت نخاله های معبد و همینطور بازیافت ممسله باقی مانده از خانه هایشان. این زمان بسیار غانگیزی در زندگی اونها بود. روحیهشون در پایین ترین سطح بود و بعد وقتی شروع کردن به بازسازی معبد مردم کینتوز به مخالفت با اونها برخواستند. اونها با این واقعیت روبرو شدند که ما ارتشی نداریم، هیچ جنگ نداریم، حق نداریم از خودمون دفاع کنیم. هیچ قانون مدونی نداریم پرچمی نداریم، ما یک قوم نیستیم. ما همه این چیزها رو از دست دادیم اونها به شدت از مردمان کینتوزی که در یهودا به اورشلیم زندگی میکردن کردن می ترسیدن. در چهارمین معزهش حجع اینطور میگه. ایمان بر ترسها متمرکز میشه به خلاصه ی از چهارومین معزه هجی در باب دو آیات بیست تا بیست و گوش کنی؟ و کلام خداوند بار دوم در بیست و چهارم ماه بر هجی نازل شده گفت بابل والی یهودا را خطاب کرده بگو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 قوله یهوا سبایوت این است. ملاحظه کنید که چهار موعظه حجی خطاب به زروبابل فرماندار یهودا و یهوشه کاهن اعظم اونها و خطاب به تمامی قوم هست. این چیزی به ما نشون میده. حجی هر چهار موعظه رو خطاب به این کسان مینویسه. حجع بر این عقیده بود که برای دستیابی به رهبران و بالا بردن تاثیر پیغامش لازمه که این پیام توسط رهبران به دست قوم برسه. یادتونه که گفتیم مردم نینوا به خاطر اینکه یونس آشکارا از این روش استفاده کرد توبه کردن یونس خطاب به پادشاه نینوا موعظه کرد. وقتی که پادشاه تبدیل شد، پیغام یونس سلسله مراتب رو طی کرد و به مردم نینوا رسید و اونها هم تبدیل شدند. من گروهی رو میشناسم که از اونها دعوت شد که برای رهبران قوم ما دعا کنن. اونا اونها سر و صدا و از راه‌های قانونی بدون هیچ تظاهر و ظاهرسازی سعی کردند که با رهبران قوم ما تماس برقرار کنند. راهکار اونها یک چنین چیزی بود. اونها سعی می‌کردن که با یکی از مقامات رده بالا مثل فرماندار یا شهردار ملاقات کنن وقتی که از این رهبران سیاسی قرار ملاقات گذاشتن در موقع مناسبی سر قضا اونها به این اشخاص میگن میدونید ما مسیحی هستیم و به عنوان یک مسیحی طبق کتاب مقدس مأموریت داریم برای رهبران روحانی کشورمون دعا کنیم یعنی مأموریت داریم برای شما دعا کنیم اما مشکل اینه که نمیدونیم چطور براتون دعا کنیم آیا میتونید بگید برای چی براتون دعا کنیم چون واقعا میخایم از کتاب مقدس اطاعت کنیم و براتون دعا کنیم من سناتورها و نمایندگان رو دیدم کسانی که در رده های بالا وقتی چنین چیزی را از کسی میشنوند ناخودآگاه میگن خب چی میخواید؟ عملا نصف زمان نهار اون روز با گفتن این صرف شد خب چی میخواید؟ هیچ کس با من قضا نمیخوره مگر اینکه توقعی از من داشته باشه شما چی میخواد و شاگردان مسیح میگن تنها چیزی که ما میخوایم اینه که برای شما دعا کنیم و دوست داریم بدونیم که چطور میتونیم دعای بهتری برای شما بکنیم. من خودم دیدم که سناتورها و نمایندگان چطور به این پاسخ میدن من شخصا نتایج مسمر سماری رو از کار فداکارانه شاگردان عیسی مسیح ملاحظه کردم که به این ترتیب و به روش ساده و مستقیم عمل کردند. برعکس چیزی که شاید فکر کنید این احترام گذاشتن زیاد به بعضی از افراد نیست. این ترجیح دادن یک شخص به دیگری به خاطر موقعیت و قدرت سیاسیش نیست. برعکس، بسیاری از پیروان عیسی مسیح افراد عادی رو بیش از کسانی که موقعیت‌های شغلی بالا یا مشاغل نظامی دارند احترام می کنن. چیزی که من شرط دادم یک راهکاره. تماس با رهبران. اگر به رهبران دسترسی پیدا کنید، میتونید به تمام جامعه دسترسی پیدا کنید. حالا ببینید حجی در همه موعظه‌هاش با چه دقتی این کار را انجام میده. حجای هر پیامی رو که خدا به او میده خطاب به زروبابل پسر شالتایل فرماندار یهودا و یهوشه پسر یهو صادق کاهن اعظم موعظه میکنه و بعد خطاب به تمامی قوم تمامی موعظه های حجای خطاب به مردم هست اما نخست رهبران قوم خدا مخاطب قرار میگیرند شاید به این دلیل که چنین نتایج عظیمی به بار میاره حجای نتایج رو بینه چون خدا با او بود خدا او رو فرستاد و او یک نبی با مسی قوی بود همینطور حجعی نتایج رو میبینه چون او از این راهکار استفاده میکنه. او خطاب به رهبران موعظه میکنه و با اونها ارتباط برقرار میکنه. پیام حجعی به این دلیل به دست مردم میرسه چون مردم از رهبرانشون پیروی میکردن. هدف چهار رومین معذی این بود. ایمان میتونه بر ترسهای شما غالب بشه. از این افراد کینتوزی که شما رحات کردن نترسید. از پارسیان که بر بابلی ها غلبه کردن نترسید از قدرتی که بعد از فارسیان ممکنه بیاد نترسید چون خدا نقشه برای تاریخش داره بعد از اون هجی هم صدا با دیگر انبیا در مورد روز عظیم و وحشتناک خداوند صحبت میکنه در کتاب ابرانیان باب دوازده شما تفسیری از این دو موعظه هجی رو میبینید هجی میگه که خدا آسمان و زمین و دریاها و خشکی رو متزلزل خواهد کرد تفسیری که از موعظه حجی در کتاب ابرانیان به ما داده شده این طور میگه همون که خدا توسط انبیا گفته تمامی چیزهایی که تزلل پذیر هستند از بین خواهند رفت و فقط چیزهایی که تزلل ناپذیرند باقی خواهند ماند حجی بار دیگه در موعظه چهارمش به ما این طور میگه او در معزه چهارمش توجه ما رو به این جلب میکنه خداوند قدرت های پادشاهی های جهان رو نابود خواهد کرد پس از این اقوام و ارتش اونها یا از نیروی سیاسی اونها نترسید اگرچه الان هیچی ندارید خداوند تمامی این ها و نیروهای نظامی اونها را از بین خواهد برد این اندیشه در سرتاسر سر کتاب مقدس دائما دیده میشه همیشه جنگ ها و شایعات جنگ ها وجود داشته قومی بر علیه قوم دیگر برخواسته و پادشاهی بر علیه پادشاهی دیگه. اما خدا برای تاریخ نقشه‌ای داره که چگونه اون رو به پایان خواهد رسون. بنا به گفته ی همه انبیا تاریخ در روز خداوند خاتمه خواهد یافت و وقتی این واقع بشه تمامی نیروهای مسلح همه قومها از بین خواهند رفت. آیا از جنگ جهانی سوم به خاطر وجود سلاحهای اتمی می ترسید؟ آیا از ناملایمات و مشکلات جنگ می ترسید؟ چهار رمین پیام هجای اینه: بذارید ایمانتون بر ترساتون متمرکز بشه و از قدرت نظامی کشورها نترسید. خدا قدرت نظامی تمامی کشورها را از بین خواهد برد. خدا تمامی این کشورها رو متزلزل خواهد کرد تا زمانی که از کار بیفتند معزه سوم و چهارم روم به قوم خدا این پیغام رو میده که بدونن آثار گناه یک شبه از بین نمیره. برکات خدا بالاخره خواهد آمد. اما فقط با فیض خدا، نه با کسب کردن و مقدس شدن و با تلاش های انسانی و جدا از قدرت خدای قادر مطلق. آخرین پیام حجعی قصد داره که ترس گناهالود ما رو از اقوام بی خدایی که ما رو احاطه کردن کاهش بده. حجای به قوم خدا میگه که خدای اونها بالاخره جفا کنندگان قبلی و فعلی اونها رو از بین خواهد برد. چهارمین پیغام حجای این بود که اگر قوم خدا به پیام او باور کنند، ایمان اونها بر ترس هاشون غلبه میکنه. های شما چیه؟ خدا میگه تمامی های شما رو میداره چون او مراقب شماست. لازمه اعتماد به خدا ایمان هست. اما اگر تاکنون با ایمان به خدا اعتماد نکردید، اون وقت باید بترسید. چون آمدن روز عظیم و وحشتناک خداوند حتمی هست. پیغام حجه این هست. امروز به او اعتماد کنید و بر اولویت ها، انگیزه ها و ترس های خودتون متمرکز بشید. عزیزان خدا به شما و به ترس های شما اهمیت میده. چیزهایی که باعث اذیت شما میشن و چیزهایی که شما را برمی در عهد جدید، یوهنهای رسول به ما میگه که محبت کامل ترس رو دور میندازه تنها منبع محبت کامل خود خداوند هست وقتی به شناخت خدا نائل میشیم محبت اون رو میفهمیم و وقتی به محبت اون اعتماد می دیگه جایی برای ترس وجود نداره دعای ما اینه که شما به شناخت اون نائل بشید و محبت اون رو درک کنید تا برنامه بعدی نگرانی هاتون رو به اون بسپارید و بدونید که اون شما رو دوست داره و مراقب قبلا